پکایت در بیان آن که کسی توبه کند و باز پشیمان شود و باز آن پشیمانی ها را فراموش کند. گازوری بود و مرورا یک خری پشتری ششکم توهی و لاغرید. در میان سنگ لاخ بی دیا روز تا شب بی و بی پناه. بحر خوردن جز که آب آنجا نبود، روز و شب و تخر در آن کور و کبود، آن هباری نیستان و بیشه بود، شیر بود آنجا که سیدش پیشه بود، شیر را با پیل نر جنگ افتاد، خسته شد آن شیر و ماند از استیاب مدتی واماند زن زعف از شکار بینبا ماندند دد از چاشت خار زن که باقی خار شیریشان بودند شیر چون رنجور شد تنگ آمدند شیر یک روباه را فرموند رو مرخری را بهد من شو، گر خری یابی به گرد مرغزار رو فسونش خوان فریبانش بیار چون بیابم قوتی از گوشت خر پس بگیرم بعد از آن سیدی دگر اندکی من میخورم باقی شما من سبب باشم شما را در نبا یا خری یا گاو بهر من بجوی زن فسونهایی که میدانی بگوی از فسون و از سخن‌های خشش از رهش بیرون کن و اینجا کشش.